اتای شیمیایی رو بعد از پیشرفت علم شیمیایینا درست می با و کشف کردن یه سلسله مواد مؤثری که اینا دوزه امین ها هستن همین مواد که چهارتاییه کربون اکسیژن و ایدوژن رو از دارن چارتایی. و اینا رو میگن مواد امینه و این آمینهای شاخه مفصلشون رو بهشون میگن آروماتیک آمین یعنی آمینات خوشبو به وسیله این آمینهای آروماتیک توانستن تمام بوها و طعمایی که در طبیعت وجود داره تقلید بکنن کانا درایی که تو ترون بتون میدن پرتقال پرتقال که نیست عطر پرتقال رو تقلید میکنن تقلید شیمیایی آنانه هست و میکی و ده ها بلکه ست ها عطر و بوی تازهی که در طبیعت وجود ندارم از اینا به دست شد و در نتیجه این عطرهایی که می که بسیاریشون کارمه های فرمولش بیش خودشون پنهانه به کسی بروز نمیدن اینا همین مواد امینه هست که به یه ایدروژن عرضی شاختلی شاختلی که انتقل کنند و با اندک دست تصرفی این گوه به هم تبدیل میشه و همون باید با موجود در طبیعت اینا تازه قبلا دو جور مواد محسر جیتر وجود نداشته یکی عطفهای نباتی یکی عطفهای حیوان. یعنی مواد محسر را از حیوانات یا نباتات استفاج می کرد اطرای حیوانی یکیش هم انبره که راجوی صحبت شد یکی دیگرش مشک مشک نریه وحفظه ای در, در که پوستی از یه نوع آهو به دست میاد در ادب فارسی معروف به آقای خوتنی که بیشتر در خوتن و اون پوست مهندسی مشکم بیش میگن نافه نافه بخش اولش نافه ناف اون هشت چیه؟ چجوه ایه؟ به <تصفيق> نسبت یعنی مال نافی مربوط به نافی این ناهو همون جای نافش هر سال پوست می اندازه پوستی ازش جدا می شود زمین ولی در این پوست یه ماده یه قرمز رنگی جمع میشه کاملا شبیه خون ما نمیدونم ترکیبش چیه شاید هم خون ولی ماده‌ای کاملا مثل خون جمع میشه اون تو یه چیزی به اندازه مثلا نیرس به انگشت من بعد این کم کم مثل زخم که روش اول تر و تازه است و خونین و بعد کم کم خشک میشه و سیاه میشه و بعد روی بعد ها میافته این پوستم هم کم کم اون ماده توش سیاه میشه و خوش میشه و فوسه به هم جمع میشه و میافته اون روش نافه و این ماده این توی این به قدری خوشبوست که میگوین پنهان کردنش ممکن نیست سعدی میگه خوبی است نصیحت چه کند گرد نکند مشک دارد نتواند که کند پنهانش و من در یه تفصیل از تفصیل کشم الاسرار و عدت الابرار وقت و دانش بودم خوندم که تاجرهای مشک و اینکه این قیمتش از طلاق خیلی بیشتر بودنست همین برابر قیمت طلاق قیمتش و دوزان از بوش راهنمایی میشم میشدم این بیان کاروانو بزن یه ماده بسیار بسیار بدبوی هست بسیار بدبو که شاید چما ها سنتون رو افضا تو تهلوم چاهای مسترها رو یه وقت مغنی میوردن خالی میکردن بوی بسیار بدی میداد که این بوش شبیه اوست ماده است که بهش میگن انگوزه یا انجدان یا انگودان یه سمقه شیده گیاه تو کشف الاسار نمیسته که تاجرای مشک بارهای انگوزه بار می و نافعهای مشک رو تو این بارها و این تفکن فوقلاده این که بوی مشک منتشر بشه و بعد که می به مقصد این نافعها رو از تو در می اردن. یه یه روز که می تو آفتاب اون بوی بعد دفت می شد و مشک خودش که نیگیره اون البته مثال میزنه برای طبیعت آدمی که اگر متمایل باشه به های بد و اینا و از بیرون خوی بد گرفته باشه میشه این رو در اثر تربیت برگردون به اینکه خوی انسانی بگیره و خوی نیکو بگیره برای که ذات آدمی متمایل به خوبی است این برای این مثال زده ولی به هر حال این مثال زده بود که انظار اجتماعی خیلی جالبه که این برای پنهان کردن این اینو در ضدش در چیز خیلی بدبویی چیز میکردن میگوردن و چون خیلی خیلی گرانباها بوده چی میشده؟ تقلب درش صرفه داشته یه <تصفح> ذره خون خوش شده است دیگه مثلا یه گران اینو میهرختن مثلا زاتون 100 تومن چن پوره قوی داره امروز خو خب اینا یه ماده دیگری غاتیش بزنی که یه برن برای نیم بشه به هم صرف دیگه 50 تومن دیگه میاد روش جیگر رو میسوزوندن رو آتش رو میساویدن شکل مشک می‌شد منتها اون نداشت اینو میزدن خاطر آشخالی که یعنی پششی که داخل مشک میکردن جیگر صوته و به همین دلیل مشتری که پول زیادی میخواست بده میخواست این مشک رو امتحان کنیم اونه خوبه یا باید در زم متاسفانه کسانی که مشک رو جنوری میکردن حوصله میکردن که این آهو این مشکش برسته و بی افته. می‌رفتن آهو رو سکت می‌کردن می‌کشتنش برای نافه مثلا گاهی هم نافه نارد بود. یعنی هنوز مایع بود چیز بود حافظ میگه مکرشان آهوی یه مشکیل مرا ای سیاد شرم از آن چشم سیاهداش و مجگان بلند و هرگز شعورشون نمی‌رسید اون روز چیزایی به این سادگی رو بینید بشر راه نبرده بهشو واقعا که پارک حفاظت شدیه درست کنن یه جایی مثلا دو فرس در دو فرس این آهوار هر جمع کنن بیارن اینتون اینا اونجا باشن بس خودشون بخورن هیش کسی هم نداره خودشون خودشون میخورن خودشون راه میرن بعد بخش این رسید هر سال بیان سال یه آفنه بردارن برن گلنک کردن الان در دوسته کشور افریقایی است که من رفتن در کنیا و در تانزانیا پارکای حفاظت شده دارن به کشور بلژیک هست تام بعد تو این حیوانات جنگل افریقا از شیر و پلنگ گرفته تا خر و آهو و گافمیش و چغال و روبا و اینا آزادن کاملا دارند ما شاید اونجا مثلا 5000 تا فیل دیدیم بچو بزرگ و نرو ما تو بچا دومولون رفتو که بعد ده ها هزار شیر دیدیم 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا هم داشت زیر درفت خوابیده بودن خمجازه و بچه هاشون باشون بازی میکردن بودن و دسته های صف های 10000 تا جو 30000 تایی گاو میش و و ذرافه و اینا همین جور اونجا آزادم برای خودشون و میگشتن و این کشورها قسمت عمده درآمد از توریسم بود یعنی توری می‌گرفتن به غر فرتون سفاری سفای 5 روز ده روز ۳ روز ه روز که بسط برران آژانس بود در شرای که می اونجا اونجا برای مسافرت اون, اون وقت اتوبوسو می‌ذاشتن با راننده می‌رفتن توها هر شبم به هتل که نمیشه گفت جایگاه‌های لژهای به بهترین صورت ممکن بهترین غذاها بهترین ملاقه ها بهترین حمام ها بهترین اتاق ها بهترین مشروب ها بهترین نمی‌دونم مهمانخونه ها رستورانا بود روز می‌رستم توی این چیزها می‌گشتن پولسوگن ستیشن کردن دن با سر باز شیش تا، پنج تا توریست می‌رفتن اونجا با می‌ستدن و این توی این جنگلا میگشت و همین حیبان‌ها تیل که ایزیم کردن و ما دیدیم که شیره گاف می‌شود گرفته بود و نشسته بود مثل بلبل داشت از می خورد، و ما در ده قدمیش بایسته بودیم، کنی قدمیش بایسته بودیم محل سک جوانم نیشد یک انگار نه انگار کسی هست اینجا کار خود چه میکرد دورش هم اول شاقالا به فاصله اف... پنج شیش متر بعد روبه ها به فاصله دفن درست اون کهیله دمنه که میگه شیر پادچای جانه ولی هم بدونه همونجور بریم بل... بلاشکور بالا که شیر خورد که خورد اول پرزور زورترها میادن بعد کم زودترا. بعد باشه حالا بعدن ها قرارداد. هر کس این گافت میشه به این گندگی بعدن چه ساعت 4 ساعت استخون سفید سفید مثل این فقط تقاصش میاد. و اینا پول عظیم حتی این حیواناتی که درندگان میگرفتن خب بعد هفته یک دو تا از اینا بعد میگرفتن پوستش رو میرفتن منداشون میوردن میفروختن به قیمتهای خوب. ما سی ست دولار یه فروس زیبرا از اونجا آوردیم خب ست 300 دلار دولار کولیه دیگه اونجا برای اونا رو هر حال این کار ساده‌ای بود که میشد بکنن ولی نمیدونم شاید نسل این حیبونو یا لعنی شاخه هایی از این, بر بر این که مشک خود داشته برانداختن برای اینکه یه دانشوی چینی من داشتم در لسانجلس بعد گوه هست مشکو اینا یک ای چیزایی آورد قطع هستی سنجت، سیاه‌رنگ بعد اینجا می‌گورد تا هزار بو بده مشکی که یک پرسنگ گوش می‌رفته من نمیدونه الان وجود داره یا نداره و الان چینی‌ها الان این چیزهای تو چهنتان رو بریم یک چیزهای به عنوان مشک دارن ولی توش داخلی داره به استلام. این مشک است و اونم آهو رو عرض کردم این آهوها رو میرفتن و می گرفتن و میکشتن به خاطر یه نافه و بعد این نافه ها میامد بعضیش خوب بود، بعضیش بد بود به هم دل که عرض کردم قیمت چند گرون بود و اشخاص وقتی میخواستن طور به این زیادی بدن میخواستن که این نافه رو بشکافن و یه ذره این مشک رو امتحان بکنن مشکم هم بوش وقتی خیلی خوب نه که بسابه فهدی میگه باز فهدی میگه فضل هنر زایه است. تا من و مایند خود بر آتش نهند و مشک به زایه میگه بعد بخرن دیگه بنابراین در علم فقه ما در دانشکتر حقه علم،, علم فقه کتاب تجارت رو که داشتیم میخونیم فصل بسیار مفصلی در احکام خرید و فروش مش بود و اینکه اگه نافر رو باز کردن چطم میشه اگه نمیدونم دیدن تقلبه چطم میشه چون خیلی چیز گرامبه بود خیلی هم مرافق بودش میشده میوردن به قاضی و فصل مفصلی راجب به مشک بود و راجع به و راجب این حرفا. و بعد هم مشک نمیشده چیز کنن نمیشده که خالص مصرف کنه چون بوش خیلی تون بود میگفتن می‌ره میرسلن و این رو با مواد معطر دیگه قاتی میکردن یه گرد خوش بوی سیاه رنگ تیم کردن چون رو شدن غالیه و آقایون در ریششون و خانوما در گیسوشون از اون غالیه مطرف میکردن به عنوان بوی خوش در قالی خوشبوب شد، در گیسوی او بیچی ملاحافظ قالیو با خیلی دارم هم. بره همه آقایو بیش دستم بله، بله، بله، بله، بله، بله، <تصفح> ریشو ریشو میذاشتم، بله، بله حتی همه سیاوه شو موقعی که میخواهم باکشنش، میگه ریششو گره برشو بله کرد، بغید. بله، بله، پادشاه اینا چیزاش هست دیگه این تصویر که توی تصویر که نیست توی نقش بردرسه این رو سنگ های دوره حقامانشین اونا هست همه هست دیگه از پادشاه تا چیزا همطور و تصویر هم که از پادشاهان بعد از اسلام و وزیران چون کسان دیگه هم داشتن همه همطوره هستشون بردیشون اینو موهاشون هم بلند بودن نه؟ موهاشون رو گاهی بلند میکردن گاهی هم میمیکردن بایی نمیکردن نمی, نمی مثلا همین حالا باب شده الان آخونده زیر همامه شون زرد دارن یه ضررم فاکول بیاسخونشون های جیم بیرون خب من وقتی بچه بودم یک دون آخونده موی سر نداشت موی سرشون می ترشتن اصلا به کلی به کلی می از اینجا ریش بود می اومد حالا اینکه که برد م... بله فاتحان قدیم گیسو هم داشتن و گوشباره موشبار، داشتن به عنوان زینت گوشوار داشتن دستبند داشتن بازوبند داشتن توق داشتن توق فردش با بند اینه که توق یه ذره نزلی که به گردنه در حال که گلوبند و یه خود نیریز پایین اینا رو اتفاقا یکی از کارهایی که توی شاهنم میشه کرد همینه که این چیزها رو که گفتن اینا رو آدم یادداشت کنه و حیعت این بزرگان و پادچهانه اینا رو شکلشون و لباسشون و وضعشون و آداب رسومشون اینا رو از اینجا بیرون بیاره این کاریست که نکردن هم حتی و خیلی خیلی جالب به هر صورت مش و انبر بود قالیه ارز کردم یکی دیگه هم نام زباد. این حیوان از خانواده گربت از نوع گربت از خانواده گربت اصلا بهش میگن گربه زبات و این موقع فل شدن حیوان نر موقعی که وقت جفت گیریشه یه ماده ای ترش شخت میشه در اطراف همدام های جنسیش ماده زررنگی مثل موم که فوق الاده خوشبوست و ظاهراً این برای جلب ماده و جبگیر. و این به حدی خوشبوست این ماده که حتی مدفوع این حیبون خوشبو میشه و این زباد رو هم میگرفتن و از این چیزش اتشش استفاده و اما اتهای نباتی دیده نباتاتی که بوی خوش دارن شوب که بوی خوش دارن گل هستند که بوی خوش دارن و دانه ها هستند که بوی خوش دارن میدونی این رو چند از ازشون استفاده میکردیم یکی به صورت دود چوب اوت مثلا به چوب خیلی سستیم هست این تو آتش که بزن دودش بسیار خوشبوس و بخور روش میگن و آقایون و خانوما می آمزن با می لباس روم داشتن دیگه که مال مرد ها بود مال خانمان چادر بود که تمام حیکله می پوشوند اون منقل که نبود یه وسیلهی بود برای همینگار که بخورتوش بود اینه می گرفتن زیر اون عوا و این دود رو نگه می داشتن تو اون لباس رویشون تا بدنشون همه خوش بودشون و چون دود بود نه بود علو بشه شعله نمیشه دود بود بکنه و چون بسیار سست بود مقداری شکر قاطیش میکردن بوی قند سوخته دوست داشتم قدیم بوی کارامل شکر این یعنی نیستن لوری چون قاطی براده عود و مثل خاک اره درست میکردن براده میکردن با شکر قاطی میکردن میریختن روی چیز چون شکر زبق میشه و طول میکشه تا به اون اودم نگه ثوامی زیادتر اود درخت باشه؟ اود درخت باشه چوبه. دیگری هم هستن مثل چوب آبنوس و چوب صندل که اینا هم ولی به اندازه اود مصرف ندر بیشتر اود هنوزم هست احیان اینجا در بازاره برگی هم پیدا بکنید چوبایی که از دورش این مقداری ماده ایم خاک عره میگیرن برای اینکه کم کم بسوزه این بوده ما زن من بعدش میاد خیلی از این بود و هر جمعی میگید جایی که میگیم این مال هند و این هست هندی میاد بوی هندی ارز کنم که یکی دود یکی عرقه عرق به معنی اینه که ماده رو که معمولا گل ورگ گل بریزن تقدیر کنه به صورت بخواب بیاد بالا طرف معروف ترین عرقی که هست گلاب دیگر گلاب یعنی عرق گل و من گفتم که گل یعنی گل سرخ در زبان فارسی. بنابراین عرق بنابشه ای میگیرن یا عرق یاس اگه بگیرن اسمش نمیدارن گلاب گلاب عرق گله و همچنین از عرق یاسمن عرق بنافشه عرق یاس عرق باهارنارنج یه ماده خوشبوی دیگری هست عرق اتروج و هنوز در شیراز مرسومه که دوخونهای آببندی یعنی دوخونهایی که پالوده و بستنی و مهنجزه دارن چیزایی خونک می فوشن نوشته عرقیات و این عرقیات همین مواد عرق شاتره بعضی از اینا رو عرق کاسنی که بعضی اینا خیلی بوش هم خوب نیست خاصیتش بیشتره به هر حال شیرازی ها خیلی چیز برن که میان از این عرقا عرق بیدمشک این چیزه که بید اینا هستش و اینا رو به همراه شربت بعد میریزن و از اون عرق هم میریزن توسو بایخ میخورن خیلی در شیراز هنوز مرس. اینا هم مصرف خوراکی داره هم مصرف خوشبویی گلاب مثلا گلاب هم توی قضاها اینا میریزن هم به صورت رو میزنن این به صورت عرق اون وقت این عرق هاری که می‌گیرن در موقع تبدیل که هنوز من از هم در که این سعادت داشتم که سال گذشته رفتم به سهران و در فصل گلابگیری رفتم به قمسر اونجا باقه های گل دارن گل می کارن. دستی باقه های گل دارن و خروار ها گل میارن، می روزن که اتاق نیست این اتاق تا سخت شده برای که این آبش رو از دست بده بعد می تو دیک و تقدیر می کنن و گلاب می گیرن نعنا رو همین کار می کنن و دو دفعه شاید هم سه دفعه تقدیر میکنن اون آب اول اول از همین بیتری طبیعی. یه مقداریم خریدیم آبوردیم زن من یه مقدارشم آبورد تا اینجا به هر حال دستگاه گلابگیرینا رو دیدیم. دیدیم که هنوز هست و از قدیم بوده و به این تحتیم کار میکردن اون بعد این تقدیر دیگه زیر آتش میکنن آبم هست این آب میاد تو لوله و میره جای دیگری سرد میشه تو زرد می که همه این نباتات چربی هم دارن که لاوت میدونید و من نمیدونستم مثلا بلال این ذرت این روغن مازلامه ولی اون من نمیدونم روغن کجاش هست اصلا این همه روغن کجای این ذرت هست من اصلا نمیدونم ولی به هر صورت واقعا داره که این روغن می گلام که تقطیر میکنن و این بخار که میاد بالا یک کمی چربی اون برگای گلام میاد همراه به طوری که مثلا اگر یک ظرف انقضی قضیه گلاب گرفتن به اندازه 5 6 گرم، 7 8 گرم چربی روش وای میسته چربی اون گل اون چربی روش میگن عطر بسیار خوشبو، خوشبو خوشبوی قبی و من یادم پدر من دواساز بود خدا رحمتش کنه احسانس نعنا داشت یعنی علاوه بر عرق نعنا یه شیشه کچلوی بود یه ماده یه سبز چربی داشت که وقتی ما دل درد میگرفتیم وقتی شده بد میخوردم و چون دلشون درد نه این یه قطر از این احسانس بود میچون توی استکان و یه مقداری کمی قند و آبلیمو می‌داد می‌می خوردیم و این به سرعت دل رو خوب می‌کرد و اونجا به هضم غذا می‌شد تمام اون غذاهایی که تو معده تنبل شده بود و مونده بود می‌برید و بد می‌کرد می‌رفت احسانس معنا که روغم بوی بسیار بسیار تندی داشت ولی که همون یه خطری که می‌ریسن خیلی من یادم هم مزه‌چگی چیز تندی بود. و این همون موقعی که عرق نهنا رو میگیره این احساس هم بلا بایی میسه یا عرق گل که میگیرن این عطر گل قمسر کاشون به این ترتیب درمی اومد و بنابراین عطر داشتن عرق داشتن و دود عطر از عطرهای نبایی این کل مواد معتری بود که داشتن و از انواع گلای خوشبو هم میتونستن عرق میگیرن که و گیاهان خوشبو که اینا مصرف تربی داشت، مصرف دارویی داشت، مصرف خوراکی داشت، مصرف خوشبویی هم داشت این مال اطراف طور کلی، برای اینکه بدونید گذشتگان چه می یکی هم یک کلمه دیگری بود چقدر حرف بودم باست یک چیده بود مشکنبر به مشکنبر می گفتن، یک چیزایی زرادی بود که آتیش می زدید کم کمی کم سخت و بوم داد. او هم اوده ماده بود شیده لابود، به هر حال مشک و... مشک رو نمی سوزونن مشک رو نمی سوزونن. یه مقدار شده معثر چیز کردن، موادی که دودش چیزه... موادی که دودش خوشبوه قاطی کردن و خب بعضی از اینا بسیار ارزون بوده بعضیش گرونتر از اینا درست میکردن، دیگه به هر حال بود. یادم <بعلا> بله،, بله، بله، بیشتر اون, اون شوب مرکزیش شو بوده، و بله. ترسونم که یه نقطه دیگری که هست اینجا این بیت 98 چون آمد به کابوس شهاگهی که آمد سیاه بخش با فرهی فره و فر به معنی شکوه و جلال و اینا معمولا گیرستی میشه اما قصد مفصلتر از این خیلی فره که در آدستویی هست خواندن در آدستو دو جور دو جور خیلی داریم یکی خیلی که معمولی است و در پارسی به کار بیان صورت تنها مثل کلمه خر مثلا مثل خط مثلا مثل همسالی یکی هم یه خیل دیگری هست که لزمان پشت باب میان مثل خیلی که در وا... خواب و خوردن و خرشید و اینا میان که بابا بشت میگن بابا این در عویستا دو تا خیل هست ای نه مثل فارسی دو تا علامت هم دارید یکیش اون خیلی است که واقعی میاد پشترش این خبر نه در فارسی شده فرره این به معنی لطف الهی و تعیید الهی است معتقد بودن که کسی که شاه میشه و کسی که موبت میشه و کسی که جهان پهلوان میشه ارزش. باید از عالم غیب از طرف خدا اینا تأیید شده باشن و اگر برخلاف رفتار کنن اون تأیید الهی ازشون بردشتی میشه این تأیید الهی همینیست که حالا میگن مشروعیت میگن دولت ها لجیتیمیستیشون از دست دادن این دیگه قانونی نیستن، دیگه مشروع نیستن چون دولت میاد به اسم ملت حکومت میکنه دیگه اگه اکثر ملت از رازی نباشن در حقیقت این دولت دیگه نماینده اون ملت نیست و این مشروعیت چه از دست میده قدیم که سلطنت رو کنبه الهی بهش میدادن و شاه رو جانشین خدا روی زمین میدونستن خب میگفتن بایدم از طرف خدا تعیید و وقتی هم که رفتارش خوب نبود اون تایید الهی ازش پردشتی میشه اون رو بهش فره ولی برای که مردم اون روزگار مردم عوامی بودن دیگه این مسائل معنوی و تایید الهی این که خیلی خوب نمی‌فهمیدن. اینی که سعی کردن اینو براشون مجسم کنن میگن جمچید پادشاه بود و 700 سال یا 900 سال به ها مختلفه پادشاهی کرد و بعد دروغ گفت یا خودپسندی پیشه کرد بازم روایت ها مختلفه و فره ایزدی سه بار به صورت مرغی از او جدا شد یعنی سه بار به مرغ ازش جدا شد یک بار رسید به ایزد مهر یک بار دیگه این مرگ رفت به فریدون پیوست که توانست بعد زهاک از بره. یک بارم رفت گرشاس به پهلوان پیوست جد رستم اسم رستم در عوستانیست ولی اسم گرشاس در عوستان هست از گرشاستم جد رستم نبوده این چیزو درست کرده به گرشاست پیوست و گرشاست کسی که آخ در آخر زمان زحاک می پوشه الان در خواب زحا جز گرشاست جاویدانانه و در خواب بعد زحاک از بند دماغند فریدون رها شد میاد و فساد بسیار در دنیا میکنه مثل درجالی که ما در اسلام بهش اعتقاد دنیم عصاد و خرابیه بسیار میکنه و گرشاست از خوابش بیدار میشه و چون فره ایزدی داره میاد و چیز که احساس نمیکنه چی زحاکیه یکی اینجا گفتن که فره ایزدی رو صاحب مرگ برای که مردم بفهمند این چیزی داشته حالا نداره یکی هم در داستان اردشیر و اردوانه میدونید که اردوان پنجم آخرین پادشاه داست عشقانی بود قبلا بگم که یک کتاب تاریخی پیش از اسلام و از اسلام مرم دوکر خانلری نوشته بود برای دبستان ها کلاسای پنج و کتاب خوبی بود و همین دلم وچه ها خیلی ناله کردن و گفتن که نه اون سنگین و بابا ننه هاشون گفت نه حرف زیادی نزدن نباید یاد بگیرن حتما خیلی کتاب خیلی کتاب خوبه اینجا در واشنگتن بنیاد مطالعهات اینو رو چاب کرده تحت عنوان تاریخ ایران برای نوجوانان کتاب هست که چهار پنگ دلار همیشتر من اقید دارم که بنویسین و این نسخه از ایتاب بگیرید حبا. من خودم دارم و اون وقت این کتاب خیلی مختصر ایست درباره تاریخ ایران که اطلاعاتی که از تاریخ ایران برای شما لازمه اون تو هست البته ایران هم که میگیم دوره قبل از اسلام و هنمگیم مدار دوره, دوره سام افغانستان هم قاتل شدید یکی همون کشور خیلی بزرگیست اینا همه جوزشد و یکی از حسنا این کتاب اینه که در هر دوره ای نقشه این ایران داده یعنی گفته در دوره هخامنشی نقشه جلو می‌بینید این مملکت چه هست؟ در دوره اشکانی باز نقشه، در دوره ساسانی هست در دوره سامانیان در دوره غزنویان در دوره در هر دوره نقشه هست اونجا. یعنی با یه نگاه می‌تونید ببینید که در فلان سال و فلان وقتی این مملکت چه بوده بعد چه شده، کچک شده کوچک شده یا بزرگ شده هم با کن و اون تاریخ براتون خیلی لازمه یعنی اینو حتما بگیرید و حتما بخونید نه به دانشو به عنوان ایرانی برای کی وقت چیزی از اون بفرسن اقل حداقل اقل اطلاع رو داشته بشه مونیاد مطالعات ایران واشنگتون اونجا خانم معناز افتانی است و کتاب دارن اگه تلفان شن من میارم برای اگه علاق من بشن. در درمیان بنامه ایران نامه که تونیش مرای آخریش مقالهی هم از بنده مفصل چاپ شده و تلفانش هستونجی تلفن میکنید اگر بهتر اینه که مثلا چهار تا پنج تا ده تا از بچه که علاق بردن میخواند داشته باشند کلاتون یه اجابه کنین یه چک بفرستین اونجا که مثلا په نصف ده نصف هفت نصف هشت نصف برای تون بفرسته و داشته بوشید تو کتاب خونه برهاد آخرین پادشاه عشقانی اردوان پنجم اسمش و اردشیر یه قوم خیشی با این اردوان که از, از طریق مادری داشته ولی اردشیرشون آدم آدمی بوده که اردوان خیلی ازش ترس داشته و از بچگی خیلی آدمش شجاع و گستاخی بوده و مثلا بچه دیگه می ترسیدن این می می زده، چیز می کرده اینو آورده بود اونجا نگرش داشته بوده بعدم حتی زندانش کرده بود دختر اردوان پنجم اردشی رو می بینه و به او مه میاره آشب نام و پیغام بند و بسات رو برحال دختر اگه که فلان روز فلان وقت مثلا تمام احیان و بزرگان بزرگان از شهر میرن بیرون در فلان جشن و تو حاضر باش من بهترین اسب به میرم و فرار کنیم با هم میجویسیار اردشیر و دختر سوار یک عصب میرم اردوان بعد می‌گرده به شهر اینه دختر نی نگاه می‌کنه بعد اردشیران میگه بریم دنبالش میرن با وزیرش و با چند تا سوار زبده به تا میرن دنبال اینا میرسن به یه دهی میگن که شما دو تا جوور به این نام به این نشون با اسبی به این رنگ دیدین میگن بله دیدیم که دو تا سواری اسب بودن و یه میشی یه میش سفیدی دنبال اینا داشت میدوید در ده قدمی اینا داشت میدوید جلوتر مثلا یه ده دیگه باز میپرسن میگن بله ما اینا رو دیدیم و یه میشی پشت پای اصم اینا میشه سفید میدوید میرن جلوتر یه ده دیگه باز میپرسن میگن بله دیدیم جوانی و دختری پشترش و یه میشی هم بتر که عصد میشه بود میشه سفیدی و میرفتن وزیر اردوان بهش میگه که برگرد دیگه تمام شد این فره ایزدی بود و از تو جدا شد و به عردشیر پیوست و تو کار تمام خالا دیگه و او درست پیده یه فره ایزدی رو به صورت میش برای این نشون میدن که مردم بتونن درست بفهمند که این چیه به هر حال پادشاهان و شاهزادگان باید فره ایزدی داشته باشن تا بتونن به پادشاهی برسن و یافاشم فره ایزدی داشت اگر پشتی نمیشد به پادشاهی می‌رسید. ولی من اینجا باز یک نکته خیلی خیلی مهم و خیلی خیلی جواله رو براتون بگیم او است که از قدیمترین عدوار در تاریخ افسانه‌ای و تاریخ اصلی ایران نمیدون چجوریه که شخصی با سر قدرت بچهش که باید جای او بشینه از میون میره و هن نوش میاد بود بار میگه کیون مرد پسری داشت سیامک سیامک در جنگ با دیوان کشته شد پسرش خوشنگ اومد جایی کیون مرد کیو میام میگه فریدون میگه فریدون سه پسر داشت ایرج و سلم و تور ایران داده بود دا به ایرج ولی ایراج هیچ وقت به این پادشانی نرسید برای اینکه فریدون زنده بود در زندگی بود برادرها ایراج رو کشتن بعد ایراج دختری داشت اون دختر شوهر کرد پسری آورد منوچه منوچه نشد شای فریدون و رفت به خونکاهی پدر بزرگش ایراج در مورد اسفندیار اسفندیار سر گشتاست بید شاهزاده قوی نیرومند پهلوانی که تاهم هم صرف خدمت به ایران و رواج دین زردوشت کرده ولی بعد از گشتاش رو پاتشایی نمیرسه در جنگ وارستن کشته میشه و پسر بهمن میاد میشه حتی بیایم تا دوره قاجار عرض کنم که فتح علیشان قاجار صد تا پسر هیلی پسر دختر و پسر از نسلش مونده بودن وقتی مورد پسری که ولی عهدش بوده کی بوده شاختادی که در جنگ روس و اینا بود الان بهتون میگم اسمش, اسمش. یادم میده الان بهتون میگم آمده. نه نه نه نه نه بذارین الان بهتون میگم آرزو کنم که خلاص شهزادهی که ولی بوده و بسیار آدم قابل لایقی بوده بسیار بسیار و جانشین فتلشا قرار بوده بشه در دوران زندگی فتلشا میمیره و وزیر و پیشکارش قائم مقام معروف بوده پسرش محمد میرزا رو میگه که تو اینو به جای من به تخت بنشین. بعد از خطرشان نوش میشه محمد شاق و اون صد تا همه رو قائم مقام جوابشون میده یا حبسشون میکنه، یا پیرونشون میکنه یا تبیلشون میکنه، یا چیچون میکنه و این نوش رو میشونه به تخت و باز همینطور این سه نفر اون دومی هست میشه دومی غمی میه کار عجبه آدم پیر که میشه اینجور حافظه شو از دست میده ابوسمیزا اپسمیزا ولی عهد قاجار بسیار آدم قابلی اولین که چیزی که ان یعنی قشون منظم درست کرد برای ایرانو حتی افسرهای خارجی رو دعوت کردین بیان قشون ایران تعلیم بدن چه بکنن چه بکنن و معروفه که هیچ وقت در بند سر و لباس اون این بازیایی که شاهزادادات داشتن تراژدی بازی نداره و یه حریف خیلی گردن کلوفتی هم داشت محمد میرزا دولتشاه که حاکم قسمت قرب ایران بود که و اونجاها و تام هم دولتشاهی ها بچه های اون این خیلی دایه آتشاهی داشت ولی به نظر از عباس بزرگتر هم بود اما از زن ستیقه بود و عباس از زن عردی از نظر لیاغت کفایت هم عباس از اون سر بود اون خیلی گرفتار این رسوم ساختاتیکی که این باسید حال سیاوش هم اینجا پسر کیکابوسه کیکابوس پادشاه سیاوش هست میشه پسرش کیکابوس رو میده پادشان میشه تو پس اگه از زن تیغه بودن نمیدونه تفایدشان؟ میدونی خیلی شرط بوده. البته به طور عادی ولی کس که مادرش کلپت یک کنیز کسی وقت کردن به نظر میاد که این وقت، حالا برای اینکه بفهمید هارون رشید زنی داشت به نام زبیده دختر اموش از بنی هاشم زنی بود هم در نهایت زیبایی و هم در نهایت عقل و شعور باقل عاجب یک پسر داشت محمد امین خیلی درش میخواست ای این پسر جای پدر بنشینه و حارون هم درش میخواست ولی بچه قابل این بازی ها نبود یک پسر هم از کنیزی. یک کنیز ایرانی داشت نام خیزران پسر کنیز ایرانی مأمون بود مهمون روش. اینا در این حد بودن که میگن که یه روزی امین و مهمون رفتن مکتب و زویده میگفتش که تو چرا اینو رو بیشتر دوست داری؟ تو چرا مهمون بیشتر دوست داری؟ چرا پستانان دوست نداری؟ هرچه بخواه خانم والا دوست دارن ولی خب چه کنن؟ قابل تری. یه روزی یه برای کاغذ، عدد کاغذ به این نازکی و منظمی حالا نبوده یک تو پروفتر میذارن زیر پوستخ مهمون معمول تا میاد میشینه یه نگاه میکنه، این ورمه راه پایین نگاه میکنه آخو میگه چیه؟ میگه مثل که جای من یه خوده فرق کرده این چیزه بلند شده چیزا جلوش شخص رو نمی گرفته که بگن تو مادر سیغست پس برو گم شد اگه خودش ناقابل بوده خب بله می مادر سیغست رایش می داره اگه خودش قابل بوده میرس میگه از رضا شاید بالاتر نمیشه که یه سرواز بی سواد یکی از درجه تابینی قضاق ساده شروع کرده بعد بره سواد پیدا کنه آخر مثل بچه های در پستان چیز می نوشد خطش فت، چارتی کلمه من نمیست بود. خواهم رفتن اصلا با علف بینیم. واقعش ولد ما امریکنت اومده اداره کرده. شاه شد همین وقت پسرش با اون همه پول و با اون چیز و با اون زندگی نتویسی کرده. این است که بیشتر خدا اون قابلیت رو با آدم بده. واقعش هر هلی خب این اعمال فره حالا میگه چیزی نمکنه یک ساعت من بایم حرف بزنم خب بخونه یکی از جوان مردان قصداب بخونه تو بخونه خوندی تو یا نه نه بخون همه نامداران شدن انجامن دیگ دست توزد دیگر دیگتی بودن خرامان برای شفیه ها رامدن که بانو درختی به بار آمدن بانو به بار آمدن را مادر به کاخ کاووس شاه آمد و بر خوشاوندان را فرختار با مچمر و بوی خش مزاره بروی دست کرده بکش به, به هر کنج در سی س... به هر گنج در به هر کنج در تیسد بود میان در سیو بخش آزاده بود بس این ذره گوهربخشاندن سر سر بر او افریم خواند چو کاووس ی بیشتر بکش چه معنی شه درست بشه همه بعد از رگ و هر برف شاندن اها رو آفرین خان زن بعد چه کاوگس رودی باو سازی چه کاوگس بر تخت اج سیاقوت رخشنده بر سرش تو چو ستار فرین کرد و بر نماز زمانی همی گو با خواب روی و پس بی آمد برای شهریار که سخت بد گرفتش تر اندر درستم دپرسید و بران تخت پیروز بنشاختش چنان از شگفتی بدو در من بسی آفرین بزرگان بخاند بران برز بالایان پر روید بسی بودنیدی در پر روید بدان اندکی سال و چندان خرد که گفتی روانش خرد پرورد بسی آفرین بر جهان آفرین و خندوت مالی پای زمین همی گفت با کردار ستر خداوند پوش و خداوند مه. همه می کویی حاض گیتی به تو نیایشت پرسند ایران و خود. بزرگان ایران همه باندار برفتند شادان برای شخیار به فرر سیاهوش کرو مادند به دادار دادا به دادار بر به دادار بر به فر تا پیش ایرانیان به بستن گردان لشکر میان به کاف و به باب و به میدان بود جهانی به شادین هادن روی به هر جای جشنی بیاراستند می و روز خواستند. خواستند یکی سور فرگوند کم در جهان کسی پیش از او آن نکرد از نهانی به ایک هفته گونه بودند شاد به هشتم در گنج ها برگشاد به هر چیز گنجی بفرمود شاد مفروز تیغ تخت خلاق از اتفان تازی به دی پلنگ به برگستوان و به خفتان جنگ به دی دینار و از بزرهای درم به و از و جا... جز افسر جز افسر. جز افسر که هنگام افسر نبود به دان هنگام تا... افسر نبود میگه وقت تاج بزاریش نبود سیاوش بچه بود آه okay. جز افسر که هنگام افسر نبود بدان کودکی تاج در خرقه بود سیاوش را داد و امید به خوبی به دادش نبید چون این هفت سالش همی آزمود به هر کار جز پاوزاده نبود به هشتم بپرمود تا تاج در زمین کوستان و ضروری کمر نبشتن منشور پرنیان. در اسمی بزرگان فرقی نیست. تامین که وسطان بوده داد شو که بودی تدویه بزرگی وجود جا تامین که وسطان بوده پیشتر که خانی همی مأبران نه داد. مأبران نه داد. با. فت نیست. حسن. پیداست که دستش کنده و بچه از حمام هم پوشیده دارم. مادر بچه حالا بله خب برای من بچه این بچه اینجا همه مثل بچه های هم به همه میگیم بخونن خود از همینجا نمره آدم معلوم میشه که یعنی لازم نیست خیلی تلاش بکنیم معلوم میشه کی چه اطواق کرده و بعدش چه جوره خب نمره هم همونجور پیداست یعن همه بچه ها خود که می بده کنم که همه نامداران شدن دنجامن به یک گستروس و دیگر فیلتر روشنه قبلا هم بینا رو من سریعی ازش می سرم برای شهری ها آمدن که با درختی به بار درختی به بار یعنی درختی که میوداره الان به بار نشسته مراد رات مراد سیاوشه طالب بزرگ شده و تربیت شده و هنرهای مردان رو پیدا کرده و مثل درختی که می بده ده بر برای شهری ها آمدن که با نو درختی به بار آمدن چو آمد برای کاخه شاه خروش آمد و برگشادن را صدا آمد که آمدن و بار باز کردن که بیاد تو پرستار با مجمر و بوگ خش مجمر همون وسیده‌ایست که توش دود می‌کردن بود، بوی خوش راست می‌کردن یه چیزی بوده نه آتشدان البته، ولی مثل منقل می‌سید این مثلاً مثلا، این بوده بعد این بیواله این سراخ داشتیم آتشکی، آتش نمی‌نهم. آتش نمی‌نهم. تتو اکسل می‌گارد. آتشو می‌ریختن تو این و مواد خوشبو رو می‌ریختن دستشون بودین می کرد و می‌گارد. آتش کردم برای روشن کردن آتیش. دیده بودی آتش گردونو؟ نه. اسفندت آتش گردونم آتش ای... گردون برای گیروندن آتیش. هیچ فرقی این کلام اصلاً نمیشه البته وقتی که مجمر نبود و این دوره ما این اخر سرا، خب آتشو تو آتش گردی درست می‌کردن. مازده خوش برام توش این اشکالی نداشت ولی اون وقت محصوله محصوله این طرقی دسته داشت دستش میگرفت اون پرستار به قول خودشون خدمت بذار این دستش میگرفت و دور میگشت و این بو پراکنده میشد همه جا و همه استفاده میکردن از بوی خوش. اینه بهش میگفتن مجمر به فارسی هم بهش میگفتن آتشدان یا اودسوز سوز. سعدی میگه که گر از بسال تو خوته کنم زبان امید که هیچ حاصل از این گفتگو نمی آگد. گمان برند که در اون سوز سینه من فسرد آتش معنی که برونه نمی آید. اگر هزار جفا آید از تو بر دل ریش بعد از من است که گوگم نکو نمی آد تراستریست که با ما فرون نمی آید مرا دلی که سبوری از اون نمی عالی. پشنگی مهد برند که در اون سوز سینده من فسرد آتش معنی که مون نمی آد ای این شعر من مثل, مثل مونیست که از اون میاد، آد باید تا این مثال سادی اون دست تا نسوزانیش خلاقیق از نفسش دن بدم نیاساویم بعد پرستار با مجمر و بوی خوخش نظاره بر اون دست کرده بکش کسانی که تماشا چی بودن و میخواستن نگاه بکنن دست سینه ایستاده بودن به هر کنج در سی است... در هر گوشه 300 نفر باعث دارم البته قید که اصرت. به معنی عدد نیست یعنی حتما 300 نفر بیست نوی نفر بزادی. یک نفر نبود یعنی خیلی مثل همین که میگیم ست دفعه گفتم این کار نکن ست عدد میست اینجا مادر من خدا بگم همیشه و اینکه معلمه بود میگفت مادر ست دفعه کمتر گفتم این نکن گفتم خانم مادر که این کمتر شیمگی هم برای اینکه دروغ نشه من که صد دفعه نگفتم باستم بادرجان این قید کسرته این عدد نیست نگران نباشید بله برای اینکه دروغ نگفته باشه فرنکه این صد گفتم این صد عدد نیست اینجا این قید کسرته و اشکال نده خیال نراحت نباشید بر کنجدر در سد استاده بود هر گوشه ای بده زیادی ایستاده بودن میاندر سیاو بخش آزازه بود. وسط سیاوش در زم شاید این به این معنی هم باشه که ترتیب قرار گرفتن لشگر صف کشیدن لشگر این بوده است که یک یک وسط داشت که میگفتن قلب قلب سپاه که فرمون روا و پادشاه رو نمیدن اینا همه در اون قلب میستادن و دو تا جناح بوده جناح یعنی پر جناحاییم یعنی دو تا کناره های لشگرش که جنگجویان رو اینا در دو جناح بیستادن و موقع جنگ اینا میادن قلب رو محافظت میکردن که قلب لشکر رو که اون کسی هم بودن علم و پادشاه و فرمون روی و اینا همه در قلب اینجا ممکنه به هر کنجدر، یعنی دو طرف سیاوش، عده زیادی بودن و سیاوش در وسط می آمد. یا در اونجا عده زیادی استاده بودن سیاوش از وسط خونامه، به هر حال اردوش یکی، چیز مهمی نیست بس این ذر رو گوهر برفشاندن، سراسر رو آفرین خاندن تو کابوس را دید، سیاوش دید بر تخت آج، زیاخوت رخشنده بر تاج. نخست آفرین کرد و بردش نماز نماز گفتم به معنی درود و نیایشه اصلا هر لغتی هر واژه‌ای یک معنی لغبی داره یک معنی استلاحی داره برای مثال همین کلونه نماز بهترین. نماز به معنی مطلق درود و نیایش ولی در علم فقه اسلامی اصطلاح شده برای یه نوعی درود و نیایش که خاص خداست و پنج بار در شبان روز باید اجابی هاد. یعنی نماز در علم فقه معنیش با نماز بیرون فرق داره اون نمازی که در علم فقیق میگرد نمیشه برای کسی خموند یاد کرد اون فقط برای خدا باید ولی در اصطلاح عادی نماز معنی درود گفتن و نیایش گفتنه اون نماز هم نوعی درود و نیایش به درگاه خودست اون میشه معنی اسطلاحی اینکه میشه معنی لغتی نماز رفت عربیه نه بس. بله بله در عوستان بوده همین نمنگه نه عربی صلاته و این هم از چیزهای جالبه که ما اسم اسم نماز و اسم روزه رو روزه عربی سومه گرفتیم عربی شو گذاشتیم فارسی گذاشتیم ولی برای از و برای وضوع هم فارسی داشتیم از بهش میگن بانگ نماز فارسی یادboton شبون شبسی خوب وانتراد به طرف داشت من رو تاوگیر دا بانگ نماز حضورم هم میگن آفته است اما اونها رو گذاشتیم حربی رو گرفتیم چرا چرا که از اونم عربیش رو کار می فارسی کار نبرد ولی نماز روزرم فارسی رو کار برد یه وقتی به کار پردن میشد در جنوب و جاهایی هست میشه ولی چرا رفت میکنم من سختره اون دو کلمه هست, هست و بانگ نماز مرکبه گفتنه سخته روزو از اون راحتره اهل زبان برای کار بکنی زبان بسیار است و سعی میکنن هم چیزی رو در کتا صورتش بتونن بگن حتی گاهی من یادمه که سرزنش که میکردن ما یه وقتون سرزن که مثلا شام میخوری این روزی که میکردیم میگفت این کله به این سنگیری تکون میده این زبونه به این کچک تکون نمیدی من این درسته آدم اون تکون دادن اون زبون براش مشکل تکون دادن تکوندادن کله برای اینکه اون باید فکر کنه فعالیت مرزی میخواهد این است که ب همیشه رو به کوتاهی و سادگی میره و به همین دلیلی که اون عربیشتون ساده تر مونده یکی عربیشتون ساده تر نبوده فارسیش میره مغصد آفرین کرد و بردش نماز زمانی همین گفت با خاک راز با خاک راز میگفت یعنی حال سجده بودن نرحال تهم شدن ازان پس بعد اینکه تعظیم و تکریم و زمین بوست رو کارهایی که مرسوم بوده به جا بر بی آمد برای شهریار سپه ود گرفتش سرم در کنار، ظاهره؟ آره، سرشو میگرفتن همچون که میگه که براغوش میگه هم سرشو مثلا میبوسیدن یا در بقل میگرفتن سپه ود سر هم در کنار بعد ذرستم بپرسید بپرسید یعنی احوال پرسی کرد هیچ صحبت سوال کردن نید ذرستم بپرسید یعنی احوال پرسی کرد از رستم بعدم یکی از مواردی که من اینها رو یاد داشته در آوردم شان یکی از چیزایی که جز این تارفت حتما بوده کسی که از مسافرت میامده یکی از سوالات که اون بزرگتر شخص شاه یا مثلا ولیعه از اون میکرده این بوده که راه چه جور بر شما گذشت انشاءالله که در راهتون سخت مکسش اینو میپرسیدن از رنج راه ازش میپرسید این مرزم صد جهاز میپرسید بپرسید و بمباستش بران تخت پیروزه یعنی بن پیروز نشان بنشاختش نشاختن همون نشاندنه اینجای قاعده ای رو من ناچارم باز بگم براتون فعل نشستن فعل لازمه دیگه نشستن خود آدم بیشنه طریقه متعددی کردن. بله لازم در فارسی امروز این است که ماستارش رو فسواند آندن یا آنیدن در میلیم تشریح میشدن میشه نشاندن یا نشانیدن درست خابیدن میشه خاباندن یا خابانیدن خندیدن میشه خنداندن یا خندانیدن این قاعده که الان هم هست ولی در قدیم یک الفی بوده که روش می‌گفتن الفه تعییه الفه یعنی الف متعدی کردن یک علف واقعا آندن یک علف وسط فعل در می آوردن و متعددی می اگه بگید وسط فعل کجاست جواب این است که اونو سمایی باید بشنوید نبید ببینید کجا دوم دوبام این که بکار بردن این علف هم سماییست یعنی همه فعلار نمیشه شه این کاری کردن کردن مثلا نشستن می شده نشاستن نشاستن یعنی نشون دادن نشاختن هم صورت دیگه‌ای از نشافتن نشاستن نشستن و نشاستن شکفتن یعنی باز شدن گل شکفتن شکافتن یعنی باز کردن گذشتن یعنی گذر دادن گذروندن گشتن گاشتن برگاشتون یعنی روش رو برگردون این الف تعدیه هست سماعی هست الان هم دیگه به کار نمیده ولی الان کلمه نشاسته نشاسته از همین یعنی نشانده برای اینکه بعد گندم ما یه مداشت توحاقیس کنن تحتیب بدن چیز بکنن تا نشاخته در بیاد اینا سری گفتن نشاخته نشسته یعنی نشانده بن این نشون است نه عزیزم یکیش یکیش ریشه فعل یکیش مصدره پخت از پختن نون مصدری گفته فرضن فعل امرش هم پختن حالت متصدی فعل نه پختن خودش متعدی اصلا دیگه بعضی فلاح متعدی اصلا، زدن زدن اگه بخواد بگی خودش زد، بعد بگی خودش رو زد اگه نبگی زد، میگی کی رو زد مرازه می‌کنین، بعضی فلاح متعدیه بعضی اصلا لازم مثل نشستن نشستن که می‌گیم یعنی خودش، فاعل خودش هم مفذید. هم متعدیه نه، متعدیه برای شما می‌فضید دیگه بعضی فیلها هست که هم متعدی هم لازم مثل سوختن سوختن هم به معنی لازمه یعنی بگم دستم سوخت هم به معنی سوزوندن ایقای نظر به خدا می سپارن جانم به سوختی و یعنی سوزوندن به دل دوست داره. بیشتر این فیلهایی که اوختن آخرشه هم لازم هم متعدی مثل, مثل آموختن آموختن همکار منه همکار کارشون خب عرض کنم که بزرستن به پرسید و بین وقتش فرم تختیب کنید و بین چه آفتش چنان از چگفتی به دودر دوباره برگشت و سیاوش این قاعده دستوریش درست نیست یعنی او او باید برگرده به اولین اسمی که هست که اینجا رستنه. ولی محصول فردوسی از این او روستن نیست سیاوشی چنان در شگفتی به در بماند بس آخرین بزرگان بخوان بران بورس بالا یا آن فر اون بالا یعنی قد یعنی بلند قاعده این است که فعل رو میگیرم یه علف آخرش در میرم بالیدن خیلی هم بهش بال با علف میشه بالا این علف گاهی معنی فایدی میده مثل گویاه و شنبا گاهی معنی مستری میده بالا یعنی قد گاهی این علف رو در استفاد دیگه در میان مثل درازا تهنا جرفا نم علف ماست تریلوش بالا هم اینی بولندی بورز من اصلا باش و, و قشنگ. من ندارم فرهنگ نگاه کردم شما نگاه کنید که است ال بورز منی پسی در از هری به شما بالی بله بر اردبیل علش علی من نم عربی نمی‌یست اون بوده هرابر زهیدی در, در عوستا اسمش از هرابر زهیدی شده البرز ولی بال بورس همون بلندی و اینا هست در حیره بران بورس بالای آن پر او. بسی بودنی دید در پر او. پر اینجا به معنی بال پرنده نیست آدمی که رشد میکنه میگن پر و یا چطور پروال گرفتی؟ شنیدید که یه بچه ای که یه خود شروع میکنه خود نمایی بیش از به طور غیر عادی میگن پروالی گرفتی؟ این پر اونه واسی بودنی در پر او یعنی به نظر شما که خیلی این بچه توانایی داره و داره و قابلیت داره. بدان اندکی سال و این دنبالش هم همینه میگید نشون بدان اندکی سال و چندان خرد که گفتی روانش خرد پروره گفتی قید تردیده یعنی مثل این است قید تشبیه اینجا پس این ای بر جهان آفرین، بخواند و به مالید رخ برزنید کی که از داشتن هم. بسی آخرین با جهان آفرین بخوند رو به مالی روح برزمین همی گفت با کردگار سپر چی دونم یعنی سجده کرد <تصفح> همی گفت با کردگار سپر خداوند هوش، و خداوند مهر، همه به خدا می گفت که همه نیکوی به گیتی ز توست به توست نیایش ز فرزند پیرم یعنی اول سفاسگزاری رو از جهت این بچه هم می‌کنم که من دیگه یعنی خدا شکر شد که من یه همچیفستری دارم باز از رهزکان این بوده که چیز می آوردن نسار می‌تردم وقتی کسی می‌اماده آدم خیلی مهمی و چیزی فیزیی که می‌دیدنه میپوشیدن نقل و سکه و بزرگان نصر یعنی چیز پراکنده و اینکه در مقابل نظم میگن نظم یعنی منظم شده شعر وزن داره و تطور کلمات پراکنده است چیز نداره قاعده بعد این چیز نداره این این که اون میگن نصر نصارم یعنی پراکنده کردن پشت کردن بزرگان ایران همه با نصار برفتم چادان بر شخیار ز فر سیاوش برو ماندن فرو ماندن این تعجب کرد به دادار بر آفرین خاندن خودم. آره همونه دیگه جونه همونه باره. اصلا به, من، به منی جلال و شکوه اینام به کار میره ولی در هر صورت مقصود اون،, اون فره ایزدیست بعد پاکچه میگه که بفرمون تا پیش ایرانیان ببستن گردان رشکر میانن دست داد که سرداران گردان لشکر پذیرایی کنند میان بستند که بستن یعنی آمدشتن برای کار که اینجا مقصود خدمت رو سرو کردن جرقه به کاخ و به باغ و به میدان اوی جهانی به شادی نهادن روی از شادی رسیدن سیاور به هر جای جشنی بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند این این مصای می و رود و رود ساز ذهی چیزی مثل فتاری نه رود آه. رود به معنی پسر رود رودخونه رو که همه می دونن معنی اصلیش رود رودخونه هم به معنی پسر هم به معنی ساز رود به معنی پسر همراه زاد میاد و زاد و رود یعنی دختر و این میو رود و رامشگران خواستن شاید ده بار در شانامه تکرار. شد هر جا صحبت چیزیه مثلا میگه چونان خورده شد مجلس ها را میو رود و رامشگران خواستن و زیبا و روانه به ذهن فرزیم رو میامده باز دوباره این تکرار این مصرا خیلی تکرار یکی سور فرمود سور یعنی مهمانی هنوزم هستیده یکی سور فرمود کندر جهان کسی پیش از او آن نکرد از مهان مهان یعنی بزرگان به یک هفته از این گونه بودن شاد جشن داشتن یه هفته به هشتم در گنج ها روز دوزه هشتم دستور داد که گنج ها رو باز بکنن به سی چیزایی داد زه هر چیز گنجی به فرمون موسا یک گنج از هر چیزی زه مهر و زه تیغ و ز تخت و کلاه وسائل زیادی به سیاهش داد زید و پول برای مفارجش از بدره های درم بدره کیسه دینار پول تلاس درم پول نقره است. اون یکی یک مثال تلاس یکی یک مثال نقره هر دو لغت یونانی دینار درم. درم. نه الان هم الانم پول یونان درخم هم. دیره همین نزدیک پنج گرم میشه یک مسخال تقریباً البته وزنش فرق میکنه در پول تاریخ ولی حدوداً در حدود یک مسخال بوده که نزدیک پنج گرم چهار و شست و هشت بزرین از ببره های دارم زدیبا یا از گوهر رو بیشو کم دیبا پرشه عبشمید می افته یه بار گفت جز افسر جز افسر خصو جنبایی از ایتر روز به شان از اصفان تازی به زین پلنگ زین پلنگ یعنی زینی که روز پوست پلنگ پیش دوید اصف تازی هم یعنی این عربی از اصفان تازی به زین پلنگ زی برگستوان زی خفتان جنگ برگستوان زره اصف که تیر بهش نفوره دیگه بود که با تیر میزدن سوار آجز میمون دیگه برگستوار ذرا عصف تو این میاتورهای شانام اونا اگه عصف بار نگاه کنید میبینید که این چیزی دوشون کنید چیزی مثل جل مثل پتو این داختن که این تا نزدگاه گردن و ایناشون رو میگرفته تنه اسب رو میگرفته برای اینکه تیر بهش اون اونو برگستوار بشه زر برگستوان و خفتان جنگ خفتانم پارچه ابریشمی کلوپتی بوده که زیر زره میپوسیدن برای اینکه زره بلز دیگه تو آفتاب اصلا تن رو میسوزونه بعدم پوست رو پراش میده ازیاد میکنه برای اینکه این کار نکنه زیرش پیراهنهای عبریشمی کلوک میپورید میپوسیدن برای اینکه عبریشم میده این که می فوق محکمه گاهی شمشیر اون ذره رو بره ولی عربیشه اون نمیتونه بوده اون خفتان لباس زیر زره ز زی برگستوان ز خفتان جنگ زید اینا رو از بدراهای دره هم زید از گوهر رو میشه کم جز افسر فقط تاج بش ندار که هنگام افسر نبود بدان پودکی تاج در خر نبود یا سیاوخش را داد و کردش امید ز خوبی به دادش فراوان نبید یعنی وعده خوبی بهش داد چون این هفت سالش همی آزمون هفت سال زیر نظرش چی جونی اینجا خبتن به خوبت... دان کودکی تا در خر نبود خر یعنی چی در خورش نبود یعنی تضاواش چون کودی دن شم سالش بوده بوده مارد دیگه آجه دیگه بلوغ فکری پیدا نکرده بود بلوغ جسمانی رو رسیده بوده ولی بلوغ فکری هست که بزنش برای فرمون روایی و حکومت نمیده. اگر هم میخوام هم همشه چون این هفت سالش همین آز بود و هر کار جز پاک زاده نبود این جز عدات هست وقتی میگه به هر کاری پاک زاده بود ممکن فکر کنید که خب شاید یه جام یه جام اشتباه کردنست بیشتره. ولی بگه جز پاک زاده نبود یعنی هیچ وقت هیچ کاری به جز پاکی ازش دیده نشود به هشتوم سال هشتوم بفرمون تا تاج زر زمین کبرستان و زردین کمر کمر و تاج علامت فادشایی بوده کبرستان کبر اسم یه نوع گیاه کبر یا کبر نوعی کیا گوی خوراکی هم هست. زمین کبرستان و زردین کمر نوشتن منشور منشور فرمان پادشاهی مهرنا کرده است. یعنی فرمان پادشاهی که برای اطلاع عموم نوشته میشه و میارن بیرون میخونن و همین گله میگن منشور یعنی منتشر شده یعنی نهش شده هره روی حریر نوشتن اون هم یه دلیلیشه دلیل دیگریش این هست که حریر خیلی خوب میمونه کاغذ روی تو سلطنه میره عربیت این گرام ها تو سلطنت هم از خوب دستگاه ولی روی حریر نوشتن ولی در ذهن حریر بسیار بادوام بوده این است که نوشتن منشور و فردیان به رسم بزرگان و فرکیان زمین کورستان براداد شاه که بود و سزای بزرگی و جاه بعد میگه کورستان اگه بدونید کجاست زمین کورستان بود از پیشتر که خانی همین ماورا نهر در ماورا اون نهر یعنی اون طرف رونتهای سیهون و جیهون این نهر است و فردوسی یه جا اسم فارسی نا... ماورانه را میگه میگه ور از رود ور از رود یعنی اون برای رود کنه بین این تو ترتیگه دارسته یا نه بس. بر از دابانه میگه اگر پهلوانی ندانی زبان ور از رود را ماورانه ور از رود یعنی نه. و الان در ایران میگه فرارود بازم به هم من دو عربی دیگه معنای بین رود نیست چرا آن سوی رود ماورای اون طرف اوور اورسیزن یعنی ماورای دریاها بخشه است البته موت از زمانی به هر هر چیز گنجی